اعوذ بالله من بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين. صلى الله مهل سيدنا رسول الله وعلاه رطازين الطاهرين المعصومين. وعلاه جميع از شد رو که مرکوم به مناسبت بحث عهد هزارت در سمیه ها قهد حجیه حاصله حاصل از غیر کتاب سنن عنوانش این بود که هزارات اخباری ها محسنش کردن که قهد که حاصل از کتاب سنن اما اگر کتاب سنت حاصل نباشه حجت نیست این عنوان بحثی بود که مرمون شیخ در اصول به اصطلاح مطرح کردن و از شد که قبل شیخ مثلا این بحث به عنوان قاعده ملازم مثلا نبا مثلا در کتاب اصول ها بود و به این سورت که حالا باشه این اصولا به این سنخ وجود نداشت اصلا که آیا که بعد؟ مرحوم شیف آمده همین مسئله روی برای دونباری البته یه بحثش این بود که اولا تحلیل باشه این نسبتی که به اخباری داده شده کسی ما چی میگن قطع حاصل از قیل کتاب و سنت بجت میتونی چی؟ ارد شد که در مثل کفایی اصرارش اینه که مراد اخباری اینه که از غیر کتاب و سنت زن حاصل میشه قطع حاصل نمیشه و دیروز روز من توضیحا ارز کردم که مرحوم صاحب کفایه اضافه بر این که از عبارات شیخ استفاده کرده خودش هم به کتاب رو مراجعه کرده مرحوم شیخ توائد المدنی در اختیارش نبوده علم محکی نبود کرده لیکن ایشان در اختیارش شده و بعضی عبارات اضافه در کفایه از صاحب مدنی آمده که انصافا خود این کارکارو خوبیه یعنی به اعتبار اینکه تقریبا میشه گفت و تقریبا مکتب اخباری به این شکلی که الان ما داریم غالقاش مسئله مؤسس و مده این طریقت رو باید محروم استرابادی, استرابادی در الله محمد علی استرابادی در الطاوید المدنیه دارم مکیهشم پشت تو من ندارم طاوید المکیه خیلی چیزی عرض و این صاحب خب مرد زمت زحمت زیادی هم کشیده ساهرا مقداری هم در ترس و محبول و کلام هم کار کرده یه منظره اون جهت هم در این کتاب شدهده من نتون کتابش کتاب شفاب حالا انتقاات اجالات در همه وارد اما هم ما خب خیلی زحمت کشیده و باید گفت واقعا مده این تغییرریه این روش رو ایشان به حساب بود. بعد از ایشان صحبتها های هم شده. الهذا بهتر در واقع روی کلمات این آقاین اخباری ها دقت بیشتری بشه و مخصوصا روی کلمات خود مرحومه مضا محمد امین استرابادی رضوان الله تعالی علیه اگر این که بحث این است که در کتابیشان موسی استنباطات زنیه یعنی اشکال جرسر کلمه زن و عرم. خب این توضیحات رو ما دیگوز عرض و چون محبوم شیخ بعد از ایشان موزن که برای ایشان رفتن حجیت قصد و ساتی میدونن میگن اگه قصد پیدا از هر چون هر که باشه بود در ها خود جفه فرمانه میکنه از اعتبارات اول و اولیشون استنبالات که کتاب از کتاب سنت فرمان میکنه از هر مسئله قصد فیلوش و به تدیر متعارفی که الان هست این خود ذاتی است و یا به تحبیر مرموم آزیا قدس الله عناصر حجیه فرق بعد از حسولش تنجیزیست به حکم عرض تحلیقی نیست ایشون تحلیق تحلیقی و تنجیزی داده نه ایش یکیه نه ایش رو دیگه نتیجیگی دیگه, دیگه, دیگه, دیگه می کنه و مرادیشان از تنجیزیه یعنی اگر انسان قرد شده میکنه و سر عرض رو حکم می کنه و تعلیقی یعنی اگه قرط نگاه میکنه اگر شارع نهی نکرد نه، نه، نه، نه، مطابعتم اون چه تعلیقی ایشون بگن حجید قرط تنجیزی است حجید تعلیقی نیست چون تعلیقی نیست لذا نهی از مطابعت قرط معنا نداره هر کدوم از عطا به قرص. از فرشلیفین اعوازم محوم استاد دیگران محوم استادی روش دیگری در بحث پیش گرفتن اول چرا که اول کلمات ایشون رو به توضیح نادیدن را دیگه به عنوان اصطلاح حقیقی مطلب در خود مطلب مطلبشون انصافا باید اثر مطلب روشن بشه که اصل بحث سر چی بوده و اصولا چرا مله محمد محمدعلی احساوندی این بحث رو مطرح کرده و به این صورت واسه علی این ارم خیلی کم دو تا عبارت 4 5 صد بیای یک خط واسعشون تقریبا موظم کتاب در این جهاز که خواهد دوتا عبارت نیست. کم کردن آوی. الان این که که ماکان انشاءالله این توصیات به شو عرض از خواهی کرد. و اصولاً این مسئله در دنیای اسلام چی جور شده؟ این سر مسئله در کل دنیای اسلام چی بوده که برد این صورتها به دست ما و بحث به اینجا کشیده شده؟ که انشالله حرزه کنم بعد در نسایج تحقیق. ارز کنم که مرموموستان در روش خواست پیش گرفتن اول بحث صغرهی کردن که در سه جا قط حاصل میشه از حکم عقل به تعبیر ما و این از کتاب و سنت نیست و فرمودن در مورد اول که ملاکات باشه قط استسو... اه... حاصل نمیشه این قطعه خودیت نداره حاصل نمیشه دو میشه حاصل میشه به حضرت سه به, به اصطلاح لیکن حجت هست لیکن حکم شرعی به دنبال دوم سه بومیان حکم شرعی به دنبال داره حاصل میشه به حجت را شرعی به دنبال این تفصیم بود که دیروز گذاشت امروز این چودی راجبه او بحث دوم دو رو کبرا گرفتن خب این بحث فنیتر همینه البته خب این بحث روحش سابقا گذاشته لیکن الان تفصیل بیشتری رو کبرا این اکاری اصلا نهی از قرد میشه کرد یا نه؟ چون ما ظاهرش اینه که روایاتی داریم نهی از شده اطلاع هم شامل صورت از هم میشه ما روایت پرابان داریم در بابا قیاس خب این سوال مطرح میشه اگر نهی از حجت نباشه در کبرا تا چطور رو یاد اون نگردی اساساً کرده حالا دغیه باشه شما لاقل نهی از سیاستی که داری پس نهی از قد معقوله این هم رو یاد که شما به خیاث عمل نکن حالا ممکنه خیاث فقط بیاد بفهمی نکنه زنگ باشه اونقدر خاص بشه اگر زنگ باشه اون بحث رنگش و مصیدم گرفتن چون هر تره خونده ریشال تو تلویزیون میشه فيه تنبیهات انسداد دارن که اگر گفتیم زن خجت نیست زن از از در حال انصلاح خجته هست فرسه اگر زن خجت باشه زن خیاسی رو کار بکنیم این تو بحث زن متعرض شده اینجا بحث قطعشه اینجا بحث اون موردیست که از خیاس پرسیزانه شد مرحومی نایین که امکان داره و نحی عدلی نحی در خیاس و هم در همین مورد می لکن نبی این معنا رو بگن نهی از قاتل شد چون ایشون حدیث قاتل ذاتی میگن از آموشه یا به تغییر مرا مواجه شم بعضی از تغییرات مختلف در من عزیم میکنم که ذهنیت اون باز باشه برای مراجعه بکنم یا به تغییر آذی و حدیث قاتل تننجیزی و تغییری نیست ذهیریشم خب خدا من از مراونایم فهمن که نهی ممکنه نیست لکن نبی لازم از به در اینکه این حکم محصول به بگه این حکم ثابت نیست میشه این کار بکنه. کنه حکمی که از راه حیات شما به دست میرین ارتباعش واجب نیست این کار امکان داره لذاه اصل مرموم استاد در اینجا خلافاً لما منحج المتعارب این منهجی که ایشون گرفتن توی رسائل و بردگفایی و پرسون ترازن ناینی و آزیادی هران نیست این منهج خود استاده از آن ما که از ایشان بود که سر میکردن مسائل رو به یک نهره خاصی خودشون مطرح بکنن و ترس جدیدی ترسی نوع به اصطلاح بیارن این تر هم ترس ایشانه چون تو مقام کبران هم سبوت و اثبات بحث کردند. آیا سبوتن ممکنه یا نه اون کلام ناینی رو به مقام سبوت تفسیر کرده. اصلا البته خب به لحاظ توضیح چونشون شاگر مرمونای بودن. نسبت به اون چیزی در اینجا نایینی در این طبیات فواعد داره کلمات استاد واضح تره عبارت فواعد مجمده خیلی مختصر آمده اما اینجا مروم استاد کلی روشن مطالب مروم های نایین رو نرم خلاصه یه کلام مروم نایینی چیه؟ البته این بحث ایشان یک ای بحث اصولی، بحث قانونی، ما تو مباحث قانونی داشته باشیم بسیار بحث زندگی. یک حرف مرموم نایی مقدماتی که دارن به قول مرموم استاد تا مقدمه مرموم نایی درست کردن یعنی برمین ترتیب خود ایشان مقدمه اولا که چند بار این توضیح رو ما ارز کردیم علم به خود خوف در موضوع خود خوفی رو بیشه ارز بشه اصلا اگر بگه شما یقین داشتید که نماز جمعه رو پس از شما باشید علم و به اول آن مستدر دورو میشه، امتقدم میشه و نفس میشه. چون لازمش اینه که اول حکم باشه تا شما علمش ایداد کنید. اگه حکم باشه چیزا میشه؟ حکم بعدی از ما مابا مقدم معاخر میشه، مابا مقدم معاخر میشه، الاخره که در اینجا هست. همون اشکال معروفی که این مستدر دور و حسن تقدم هست. و از شد چرا رن مرحوم ناینی این رو به یکی نفر دیگه غیر از این اشاله معروف که همین نظرشن به اشاله معروف از داتی بیشونه بحث لطیفی داره بحث انتعبیر خوبی داره بلاتی اون تعبیریشان انتصامات سانریه یه حکم نمیشه در موضوع حکم اخذ بشه مثلا ممکنه بگه اگر مثلا وجود هست که منبان مثال علم به وجود پیدا در قبل از بلوغ این حجت علم خود ثابت نباشه این ممکنه این قسامات چون یکی قبل از بلوغ که بعد از بلوغ این ممکنه مثلا اما این که خود علم مثلا به این که اگر نماز جمعه رو با حضور این عدد این ممکنه چون نماز جمعه حضورش مختلفه چه نفر گفته شده پنی نفر گفته شده هفت نفر گفته شده این به اصطلاقیشان این قسامات اولیت داره موضوع اما چیزهایی که بعد از خود و پیدا میشه مثلا بعد یک وکی باشه این با مثلا بعد از او قصد عمر یک امری باشه قصد عمر یک امری باشه علم و عمر این چیزهایی که بعد از امر تصور میشه نمیشه عقد بشه در خود موضوع خوب مثلا بگه شما نماز ظهر بخون به قصد خود امر نماز اون قصد خود امر نماز بعد از امره نمیشه تو امر احس بشه، این اصطلاحی که به اصطلاح مجرد شده به تحبیلی شد یکیشم علمه علم از این قصامات از به شد چون باید حکم باشه ما علم شده بکنیم نمیشه بگه شما اگر به اصطلاح علم با حکم داشتی حکم ثابته این یک بقی مقدمه خب اینه که از مبانی معروف نایمی البته این مقدمه رو اینشالات حالا سابقا هم اشاره کردیم چون تو مرحله زن تو بحث تسلیم و زن، مفصل و با حجیت زن آقای مفصله بودن سالا هم من اشاره کردم با آینده اینشالا اونجا توضیح میدیم و توضیح خواهیم داد به این به اینکه که همچین چیزی نیست حالا آقای نصرات دارند تسلیم و علمای احل سنت و از ادید و می خود درباره حسن اشعری مسائل دادن که مثلا تا علم به حکم تلک حکم میاد. هر کسی میگه اولا خود اعلانه اشعری رو در موضوع مخفئه نذاشتن، ولی خودش خالص به تصویب باشه. مثلا اصل اینه که ایشون اصلا خالص به و, و, و این مالی که دیگه از مال ایشون نیست، حالا این شده ای اطلاعات دری اختراعات اثر ما. روی منابع اهل سنت ضعیفه خیلی جا به شده. و اون اصلا چیز دیگه این مراد اصلا مختلی چیز دیگه یک از این علم بخو کن. اصلا معموم دره علم بخو موضوع بشه برای خدا کن اگر این کلیه صرف باشه رو بعد از خواهم کردیم یکی از نوازه کلیگیست که انصافاً کلی توضیحش در کلمات از ما و این که اصلا چی بوده در صدر اول چی بوده و اشاره چی گفتند و معتدره چی گفتند و معتدره این یه توضیح احتیاج داره برای این مطلب درسته لیکن کسی هم تصور نکرده آلا من تحجیب علمی آقا اینه علم و حب خود بحب. علم اگر طریقی صرف باشه من که دارم کردم علم طریقی صرف هیچ اثر نداره هیچ کار نمیتونه بکنه اصلا علم طریقی صرف غیر از آن اینکه دور لازم میاد بنابر مسلک امامیه که باید مسال اتنا خواستی باشه علمی که طریق صرفه نه صوریل مخصده میکنه نه صوریل مقصده میکنه علم صرفی چی نداره کسی همچین تصور نکره چرا این بحث بحثت میکره مگر اینکه علم تر موضوعی باشه اصلا بگه علم مشهر حجت علم غیر مشهر ایک چیزی باسه فرق بگذاره ولی اگه علم طریقی صرف باشه که فقط طریقی صرف باشه هیچ چی نداره چی باشه. این نمیشه تو هیچ اثر بکنه تو... نه تو هوات و عوامل خارجی، نه تو عوامل خارجیه در هیچ اثری نمیکنه. نه اینکه در هو. علم کی تغییر واقع و عوض نمیکنه، ایجاد مصلحت نمیکنه. حالا تو ذهن آدمی هست که مثلا در که مثلا علم تغییر در خوبیده. موضوع موضوعه. بحث دومی که مرحوم نایینی دارن، اینم یه بحث لطیفیه که مخصوصاً تناسب شاگرد خود آیه محل اشاره قرار گرفته. اگر تقیید علم حکم به علم مستحیل باشه اطلاق هم مستحیله چون اشون تقابل بین اطلاق و تغییر رو از قبیل تقاول عدم و ملکی میذارن یا ملک و عدم میذارن. لذا میگن اگر نشد به مثلا اگر علم داری نماز جمعه واضح به نماز اطلاق هم به این لحاظ نمیشه چه علم باشه چه نماشه اطلاق وا با در جایی باشه که صلاحیت فیز داره مثلا فرض کنید شما میگی آب بیاد ببین این اطلاق داره چه آب شاه باشه چه آب لوله باشه خب درست اطلاق داره چون ممکنه فرض اما بگین این اطلاق داره آب کره ای مریخ باشه کره ما خب گفتن کره مریخ خب تابونی که اطلاق به واژه آب کره ای مریخ نداره چون خودش تغییری که نداره پس اطلاق همیشه در جای تطور میشه که تغییری ممکن باشه وقتی خود تغییر ممکن نیست دیگه مثلا بگه شما پنج تا مثلا گردو بیا این پنج تا داره چه پنج زوج باشه چه فرد باشه چه امکان نداره آقا پنج که امکان نداره که اطلاقی در حقیقت موقتیه نه تغییر ممکن نباشه قائل‌های اطلاق هم ممکن نیست خب اگر اصلاح نره پس لزایشون نتیجه گیری کردند که هوش مقید به علم علمش اطلاق هم نداره مثلا گفت ناموس جمعه بر شما واجب دیگه اطلاق داشته چه علم باشه و چه چی چیز باشه روشن اینم ایشون میگه اطلاق تر امکان نداره اینم مقدمه دوم ایشون مقدمه سوم ایشون ایشون میفرما در بعضی از جهات اگه این مطلب محلو باشه خوب در نظر بگیرید مثلا علم دخیی باشه به تعبیر ایشان بنا علم تغییر دیگه دقیق باشه تغییر تقید، تغییرش نیست اطلاارش هم ممکن نیست اما گاهی اوقات باز متکلمی میخواد تغییر بکنه مثلا بگه اگه علم بود یا اصلاح بیاره چون اسم تغییر ممکن نیست اطلارا هم ممکن نیست ممکنه مرادش باشه مرادش به این معنا که مثلا بگه این حکمی که با این علم پیدا میشه ایشون میگه در اصلاح قانونی خود ایشون یه ای اصطلاحی ایشون هم نبوده ایشون اسفران متممون جل این تعبیر ایشان توی بحث قصد امرم این بحث گذرشم این بحث در ایشان که به متممون جل میشه چون تو بحث قصد امرم صابت کفای اشتان با همده دوام نیشه من نمی کنم بحث تکرار بکنم اون هر رای که اونجا بسه شده من بودا این با متممون جل میشه متممون جل لسانه دریمی بیگر بیگر مثلا بیا یه فرص نماز جمعه واجبه نباب در درمیه اگر تو جاهل بودی و نخوندی نماز جمعه و نخوندی زور خوندی اشکال نداره کافی این مطمئه قسمیه نگاه دیشون مطمئه ما از جمع بین دو تا دلیل اینه میفهمیم که اون حف مقید به علمه مثلا کشون مثال داره و اون دو تا مثال معروف یکی جهر و یکی هم اتمان در مورد قصر البته در عبارت و علماء بعد در شنوزه اهده همان موضع آخر آن توضیح روید که جهر و اخفاد اهده همان موضع آخر درسته اما قصر و اتمان فقط اتمان در مورد قصر قصرش نه نه که اینجا بیشون تشریح میکنه اشاره داره برای همینه ببینید اگر کسی در نماز صبح جاهل بود اخفادن نماس آرام کن درست. نماز دو رو بلند خون اونم درست در جهر و اخبار احده ما مکان آخر درسته با جهر اما در قصر اتمام اگر مسافر بود میدید جونه نماز تمام خون. اونجا درسته اما اگر حاضر بود که وزیدش تمام بود و نماز قصر خوند. اونجا بازره اون قصر اتمام در صورت جهر فقط در جایی که اصمه فی موضع قصر اما اگر قصر قصره ویسه قصره دی موزر اطا اونجا نمازش باسه حالا ایشون میگن این موارد رو اینجوری حکم میکنیم یعنی ما میگیم به نتیجه و تغییر مقید به علم شد به نتیجه تغییر مقید به به یا یهل و علم و اینها شد نه نتیجه به خود تغییر چون تغییرش ممکن نیست چاره ممکن است با یک متضمن جعل با جعل اولی نه با جعل دومی دلیل دومی بیاد و بگید که مثلا به بامثال درسات جعل اگر شما نماز فرض بود جاهل بودی تمام بودی درسته تمام این که آقا خب الان تا که من میدونم همشون فصد دارن در همین اردم تا اونجای مادی حواشی متعدده که اگر کسی در ماه رمضان جاهلان در سفر روزه گره روزش درست دیگه نداره اصول سنی بوده، تازه مسیئه شده. نمیشه مثل که در شیعه در سفر نوار روزه بگیره. روزه گرفت، قهرمانان تو سفر روزه گرفت. با اون تصورات سابق خودش بنای آقایون بر این است که روزه او درسته چون به واسه دره اگر ایشون معلوم ننی اینجا مسئله صوم و افطار رو مثال نزنن اما این خطا هست که روزه او درسته خود اون قبول نداره اما خطا بر این است که روزه او درسته. حالا این راجب به این مطلب پس معلومینا اینی یه نتیجه تل و نتیجه تل تقریب شدن که این رو به اصلاح خودشون و همیشه با نتیجه تل اطلاق کرد دیگه شامل و میشه یا مثلا تقریب کرد که مثلا در این حالت نمید ایش رو با ها این بگی در باب خیاث از لغیات از این نتیجه نتیجه‌شو تعییدم شاید میتونه بگه اگر شما این به حکم پیدا کردین حکم میشه مقطوع به از طریقیاس این به اصطلاح لازم ان اتباع نیست این خیری نیست این حکم در حق شما ثابت نیست ممکنه بچم به اون ازش تعیید و دیروزم من از که میشون میگه رواه عبان هم, هم همینطور اون رواه عبان هست این نکه عرف هستنی بالخیاس اونجا هم چون در رویت عوان داره که عوان عرفه کان یبلغان و نه هم بالعراق میگفتن به ما این مثل رو سن نبر اومن من خاله بود اصلا تبرید یه این کلمه ای نبر اومن من خاله یه نگه ما جرس داشتیم باطله یعنی به اسطلاح ما هموندون خدا لحنه از این قوالی کلام رو مثلا کسی که نبر اومن من خاله یعنی جرس داشتیم یقین داشتیم یقین, داشتیم. یقین داشتیم که این لذا محل استشهادی نیم خلاصه بحث در نسبت به حک تقیید یا اطلاق به لحاظه علم یا جه درست نیم نه اطلاقش درست نه تقیید لیکن به نتیجه تقیید یا نتیجه تل درسته اون وقت در باب خیاس به نحر نتیجه تقیید مغیب شده نه اینکه که بیده قرد جد نیست. جد نیم حکمی که مخصوان به هست طریق خیاس یا استخدام یا مساله مستره یا مشابه داره، این حکم حجیت نداره این حکم ثابت نیم بعد این نظر به کبرا. یعنی به اصطلاح میشه عدم حجیت با نه عدم حجیت خود قرد عدم حجیت حکم مخصوان به تقیید خود و حکمش این خلاصه نظر مرهوم نایم و اما مناقشات مرهوم و استاد مناقشات به استاد راجیب اینه اثیر که روات ابان باشه دیروز خوندیم از کلیم دیروز استاد مناقشه کرده اولا روات عبان زعیفات و که هنوز من بچه نفهمیدم احتمال میدن بله این نقطه خاصی از جاییشون گرفتن به البته سندی که در کتاب حقیق آمده خیلی صحیح نیست اما بازم به این نظریشان چون روات در هست کتاب آمده تحضیح و کافی و فقی استرسال هم تو زهر نیست در این سه مصدر آمده و در کافی هم سنده در تحضیه هم سنده سهیه مصدرش هم فرمو کنه مصدر تحضیه جلس کافی. بعدم ایشون فرمودن لا دلالات علاقونیه قات اندر که از کنه این نبرام من قالهو و نقول اللذی جایبی شیطان این تعبیر مشعره به جزمه برده سال بسنم که دلاته بر من از عمل به قرد نیست محاید بگه تو بی خود قرد شده نهی از حسول قرده یعنی در صغرا بحثه نه در کبرا از فرم که ما که در روایت قردی از, از قرده از قرده ندیدیم حالا من نمیتونم این توشوره مرمومه استاد بله این مطلبه فرمودم این که خیلی به ذهن نمیاد که درست باشه توی رواست ها داره نهی از که آفت نسونه ازاقی سات نیست، از خبت نیست، نید زن باشه فرقی باشه سوالاتی نه پا نیست راجع به حدیث هم من دیروز سوزیه ارز کردم یا حالا بخواهیم کلی بحث فرقی میشه ببینید من دیروز ارز کردم ظاهر حدیث هم تو ذهن آیان این دیروز سوزیه میداده چون سوال اینجا بود یک انگوشت زن 10 تا چطور دو تا بی تا سه تا سی تا 4 تا بی تا تو آمده که چطور میشه سهتا تا تو سبحان اوان می. در سه تا سی تا در 4 تا بی تا آن تصور اشکال سر دینه که چرا در ستا سی تا در چهار تا بی تا. فقیه همان فقیه هست نه، از اون یکی خب همین موان این تصورش همینه تصورش اینه که شما وقتی یکی رو مثل مرد دوتا هم مثل مرد گفتین. پس شما شاید نظرتون اینه که دیه زن در از نفس کامل کلا مثل مرده فقط تو نفس نفس میشین رسید به چارتا دید تو چارتا نفس, تو. نفس نفس. نفس. نفسه که نفسه که سلطه همین ایش ماها چی بگه اولا من توضیح خدمتون اعرض بکنم مسئله تنصیح دیه ی زن در نفس در قران نیامده اصولا در قران مقدار دیه هم نیامده اصل دیه که فارسی بفاسی تنصیح اینشان ادائنه ترداختن ترداختی اصلا دیه فارسی ترداخت در قرآن دیتون مسلماتون لا اهله هیچی توش نداره مقدار کمیت خصوصیات نیامده یک پرداختی به خاندان اون متوفا بازداده بشه تنصیف دیه در هیچ آیه قرآن نیامده که قرآن کنیم اون که قساسه برای نصیب برای فرامون بحث دیه در قرآن تنصیف تنصیف دیه حتی در دیه کامل هم نیامده این خوب چون ما گاهی این اصلا تصور ذهنیات نیم من کراه همه هست کردم اون مشکلهی که در دوران خلافت پیدا شد همین بود من نمیخوام هایم چون یه وقتم مساعدش وقتم ما باید این بحث برگردیم چون تو اینجا اصلا این نظر محدث استرابادی و اخباری ها در حقیق این بود ببینید زمان پیغمبرشون دوران اولش هم کم بود هم شینیش داخلی بود تازه هم فتوحات مختصری شده بود دورانش دو, دو سال گردید خیلی گفت که ما دوران عمر به خاطر فتوحاتو گرفتن ایران و جاهای فراوان که گرفتن دو مشکلات اینها و خیلی از مشکلات فکری در حقیقت یعنی بحث اگر شینن که عبدالرحمن بن عوف گفت که او که عوض الله و سنت النبی ما مسار علیه شیخان چون یه کارهایی که عمر داشت یه دست کارهای او به عنوان یه خط فکری طرفی میشد این که اگه مثلا عبدالرحمن کشی ما سار علیه شیخان و امیرالمومن کشی برام مثلا نه من قبولم سار علیه شیخان قبولم این چون توی بیانات علمای ما هم تبیین نشده که اصلا اون خط فکری چی بوده اون مشخصات اون خط فکری که خط فکری اون دو نفر رو جدا می‌کرد یکیش همین بوده که از مسئله اون تدوین سننه تیغمبر بوده این عرض کردم این غیر از کتاب اصول حدیثه که آن برداشن کتاب ها می چند دفعه هستم در زمان عمر سه مسئله رو عمر محرد کرده نه یکی تصمید در کتاب های ما این ستا خلق شده چون تو کتاب های شده نگاه کتاب های ما یه مسئله تدوین و سنن بوده یه مسئله کتاب الحدیث حدیث بوده یه مسئله اکسار طول حدیث بوده زیاد حدیث رو کرد کرده فر. این ستا با هم خلق نشه تدوین سنن این بود که ما بیاییم سنن پیغمبر رو معیم بکنیم مثلا در قرآن همین بحث ما ننفید دیه آمده سننش معیم نیست سنن نبی در دیه چی بوده زکات کلیاتش آمده سنن نبی چه بوده؟ نماز کلیاتش موضوع کلیاتش اومده این بخش تدوین سنن یعنی سنن وضو سنن خود سنن نماز سنن سوم، سن. یعنی اونایی که پیغمبر اوجبه اون نبی حالا به چه ایجاب اجازه پیغمبر و رابطه ای این سنن با فرایض الهی تو بعد وقت سابق اشاره کردیم بحث خاص خودشی می‌خواد که متاسفانه در اصول ما نمی‌تونم گاها اشاره بحث تدوین بود چون عمر از قدیم با یهودی‌ها از اول ارتباط داشت، عبری‌را بلد بود، توراس هم بلد بود، عبری‌را می‌خوند، می‌هن می‌نویس. چون عمر در مکه که بود، خط کوفی یاد گرفته بود. عمر می‌گفتن که نوشتن بلد بود. بعد و تصادفاً آله نور پس یا رای دیگه. دخترش حفصه هم نوشتن بلد بود. تو زنهای پیغمبر هفته نوشتن بلد بود. مثلا عایشه نوشتن بلد نبود. الان که من زنانشون 700 چیزی یعنی نوشتن می‌نوشت حفصه دختر اومر نوشت خود قران اولیه هم که به او اوراق بود به قول اهل سنت در ابتدا در زمان عمر و علی بحث صحف بود مصحف نبود در زمان در زمان عثمان مصحف شد این صحف که در زمان عمر بود در اختیار حفصه قرار داده بود که از اینها بعد بیان مصحف تدوین شد تقاعد حالا من دیگه وارد اون بحث نمی‌شم عمر آشنایی داشت با اهل سنت اونم با یهود یهود هم یه شرجی داره غیر از خود تورات که همون اسفار خمسه باشه که الان موجوده البته شواهد هم خود یهود قائلن هم شواهد قرآنی تایید میکنه که توی مدینه در اختیار یهود مدینه یه نسخه صحیحه از قرآن غیر محرف هم بوده ولی نهی که توسط تخفیف، تقریبا بعد از اسلام در تورات شده، ما با این میخوام بشن. به هر حال عمر با اون به اصطلاح تورات آشنا بوده و عبری هم میخونده. وقتی در میان یهود، چون یهود هم باز اختلاف طوائف مثل شما سنی و شیعه ان دعوایی که در میان یهود کتابی هست به نامه که ما در فارسی تلفظ میکنیم میشنای یا میشان، دارید اختلاف لجوانی یهودیتون عبری نیستن. یا در نوشتن در کتاب عربی غالبا مشنا نوشتن ایرانی ها ترجمه فارت شابیش نام مشنا. این میشنا که یک لفظ ابریز تقریبا مراجفه تقریبا کلمه الموسنا الموسنای فارسی ما الموسنای که عربی یا مکرر این کتاب سننی بوده اضافه بر اون که در تورات و احکام آمده به وقتی صحبت کتابت سنن تدوین سنن شد از اومد تو اون مجمع مشورتی که داشت سی نفر بودن 15 تا از اهل مکه بزرگان مکه و و مثلا طلحه و زبید و صدر و پاس اینها 15 اهل مدینه صدر بن فلان و دیگران 15 نفر از در اونجا بحث کرد که آیا تدوین بشه یا آخرش که منبرمیون بر نمی کرد کرد بعد نظر مطرح کرد که صحبت این شده که ما این سنن رو جمع بکنیم. و که این اگر جمع بشه که همشون اهل کتاب. اهل کتاب موردش یهودیه. <تصفيق> این یه چیزی نیست اون طوری. یه حالا یهودی هم دو تا وجود دارن. یک طایفه که خیلی اعتقاد داشته اند به ما. این ما. هر کس آدمی مخاطبون بحث بشن. این رو گفت من نمی‌ترسم که یک چیزی مثل مشنا بشه در یهود. تشیش کتاب خود مشنا یه من به حقوق عقود و ایقاعات و معاملات و آخریش هم تا اونجوری که به من گفتن کتاب تهارت به کتاب طبور. این کتابی بشه مثل کتاب مشنا در مقابل تورات بقید کردیم لذا رو این اساس جلو این کار رو گرفت این اونی که از آمه محصول شده این عشق بها یه بحث دیگه یعنی شد کتابت و لحبیث. کتابت رذتی به سنن نداره ممکنه مثلا احادیس سر سوره احادیس اخلاقی رسول اختصاص به سنن نداره اشتباه نشه دخت سنن نبوده این رو هم نقطه امر نبود نقطه از سعید خدریه اون سعید ممارد سعیدنم نمبر. برسیدنم من کتر هم غیر قرآن فلی هم هر هرچی غیر از قرآن نمشیم پاکش بکنه. میگم که تا بای ما متاسفاله این دوتا با او آخر زمان عمرم چون مخفی امسال ابوهور خیلی هنی رئیسال رسول الله حدس زنی از که ابوهور دیده انت درک که اهل سنت که عمر ابوهور شلغم میذاره بگن نه اینقدر حدیث لا لاتوکس رو بنره حدیثان رسول الله و داره که عامل مؤمنی و یه وقت ابوهور در حالا نه می‌بنده ابوهور که حدس زنی خلیل رسول الله همین شلغم میاد یا فهموندنش شلغمش نه فرمونه من تا کانه خلیله یا کرده ها که طالبا خلیلی اولا چیه؟ تقصد بکنی؟ پس اینا سه تا عنوانه که متاسفانه در این مطالب اشتباهی بیش آمده جا به جا شده حالا من وارد چون این بحثم بعد باید انجام داده بشه یه توضیحی بعد برای این بحث عرض میکنم که انشالله حدود این بحث رو بشه وقتم بوده من رفت بحث بدم بحثی که بود. بحث قیاس رو اثر کردیم از همین جا اضافه شد یعنی از همین زمان و عمر راءی و قیاس جزء مصادر شریعت قرار گرفت اما نامنظم بود قرن دوم اواخر قرن اول توسط ربیعه بن عبد عبدالرحمن که از علمای مدینه بود سر و سامانی پیدا کرد تولد قیاس به عنوان یکی از مسادر تشریع و سر سامانش توسط رهیت نبیه و رحمان مدنی و که در مدینه چون جب غالب سنن رسول الله بود این گرفته نشد بعدها ابو حنیفه پیش این در پیش ابو حنیفه پیش قبیه لرسنده ابو حنیفه خیاس و برس کوفه تو کوفه گرفت ولی زرده در اصلاح اهل کوفه در اصلاح اهل میگه مدرسه خیاس مدرسه رای کوفه است تأسیزش هست روشن شد مثلا؟ و سنن رو بعد آمدن بنویسن تو زمان آمرک که نزدستان تدیل بشه نوشتارهایی حالا من توضیح میدم نوشتارهایی دست چند نفر موجود بود از مجموعه این نوشتارها و نقلهایی که شد سنن تدیل شد. یکی از این نوشتارها مثلا نوشتاد بود که پیغمبر اکن برای عبیل وقت نه عمره نه هرز نوشته بودن این برای امرو نهر به نبدت نوشتایی بود بعد حریب رکم در امرو خودش نوشته بود این نوشتا بعدها موجود بود در خاندان بود تا زمان ماموسادق هم موجود بود ما رواست تقییر داریم که اماموسادق روی که اشتی هم پیش این خاندانشون اون نوشتر در, در بیار راضی به دیگه پران چی نوشته؟ ببرفتم اون جس این این بود آمدن نهارم کردم امام با اون درسته صدقه درسته این مطلقه خیلیه یه مقداری روشنی شد تاریخ رو براتون سنن از همین نوشتارها جمع شد اولین کسی هم که صحیحای جمع به علاقه این جمع شما موفق بود عمرو ابن عبدالعهی بود سال صدقه شید شروع کردن حالا یک نیشات بر برد چرسوندن جمع کردن بعدم بود کردم که دو هم به هم خود اون نوشتار هم به ج در کتاب حبيبت الرحمن نه حج تو اولش داره فن نفس ال في نفس الانسان معت منل عدل این سنن ده اندازه آخراش داره که ديهت المرأه على نصف ديهت الرجل و عنوان اجمال در روشنش شد مشهوره بین علمای اهل سنت به دو نفر از علمای اهل سنت در نصف خلاف داره شده این دو نفر قائلن یه زن و مرد یکیه اینا صدر عبارت گرسه تصاویی دیه ای زن و مرد به از این دو نفر هم به کسی از علمای اهل سنت اون شدید بوده شما مراجعه کنید اونا صدر عبارت عبی بکر نهد هم رو نهد مشهغورشون اصل دو ننظر ها بقی چقدر هستن ممس اززارار بیا م رو باشیم. همهش قائل به هستند. مشکل کجا شد؟ مشکل این شد که آیا این تنسیف در جمعیه مرااط دیگه یا این تنسییر فقط توی دیه کامره؟ بنای علمای، کوفه به این که تنسیف در جميع مراتب وقتی میگفت یک انگشتر زن گفتن 5 شد نه ده تا دو تا زن 10 تا شده. شد, شد سه تا انگشتر زن 15 تا شوتو تنسیف رو در جميع مراتب نمیدیدن اکثرن از دو تا رأی شاز بود که تساوی رو مطلقاً میدیدن روشن این وقتی از امام سوال میکنه یکی امام مثل مرد دو تا بیست سال مثل مرد سه تا تا چهار تا بیست دار این, این شد. یا شما قاید باید به تصاویی مثل اون سرعی شاست اون روشن شد شما زمان ما را در نظر نگیرید اون زمان این سنت رو از این کتاب و نظام هم که این روایه در حاله این سنه ازاقی ای این ستمون چرا تعدیر سنت گردن؟ چون اصل تنسید در کتاب نیست در سنت اون روشن شد اینجا به اینجا و اینجا. اونا می آمده که می گفتن چون پیرا بر گفته دی یه کامل نصف اعضاع رو هم بر کامل حساب می اسم این خیاس بود حالا ممکنش شما اسم این روزی هستم قاعده اینجای خیاس؟ ممکنم اسمش رو زنید یعنی تشریح کردیم یک چیز رو به چیزی دیگر این که امام فرموز این نکه هر کنید این اشاره بگینه امام می درسته تو سنت پیغمبرش می نیست لیکن از پیغمبر یک سنت دیگری هم هست اون سنت درده برزیده بود اون سنت اینه که دردیه کامل نصفه قبل از کامل تا حدود تا سرس مطابعه هم بعد از سلس نصفه تا سلس المن... یعنی یعنی ای... البته از کده این مخلق این مخلق توی اون کتاب عزیز اکر نه نه هز نیست لیکن جزء به سنن منحوله این رسول الله هست. ولی زا خود مالک فقیه احلی مدین هم عقیدش در کوفه. امیدشون این بود که از اول نصفه. اگر دو شش وارم باشه، فقط یه جوره کوچیتی باشه. دو شش اگر زن باشه یک شش وارم در مدرجه دوسا. در مدینه میگفتن نه. تا یک سوم. مساویه بعد از یک سوم نصفه. ولی گفت این نهادا کانی جبلگنا و دهنو به ایران. چون جهت کوفه ای بود. جهت کوفه. این بود که از اول نصره یعنی بحثشون این بود که تلقون روایت عبید بکر نه نه هست دیه یه زن خب شد در یک انگوشون در تا پنج تا. بعد ادامه داد وقتی تو چلتا نصره شد این یعنی شد تو سیتا تو چلتا که رفید شد دوشنی شد لازم این یک دو آقایان ترجیه رو نبرمودن بخواست هم اینجا بسائلو بیارم. بحث دیات افراف رو در بسائل نگاه بفرمایید رو نه این بابی که این رواس رو ده با بعد شالا پیدا رو پیدا کنید روایتیست از عبی مریم انساری اما عبی جعفر علیه السلام ابی جعفر یه از علمای کفت چیه این کفت در رو این بحثه رو من بگم در اونجا این عبید جفر خالدی از اول مره تحرم نصف نر رجال که این بشه پس این تنها خیاس نبود شد مرموم عوان احترام به احترام اونس بود در حقیقت غیر در از اون رواست عمران عجیبه که پوشن شد براتون ابو مریم انساری که از بزرگان ما هم, هم هست سنوی بهش احترام قائلا اصلا خود ابو مریم پیش احرسولات هم خیلی محترم ابو ماریه بن از امام باغم این ابان اینه دیه المرکه علی نفس رجل مرحوم صاحب داوته پس این ذهنیت روشن شد که چه برای مرحوم ابان بن وجود داشت هم روایات شیدی بود و من حاضر که وقتشم نیستیدیم مخواستیم ناظر سوات رو کنیم یه خاص خود ماست که اون جود به اینجوری احتمالاً اصل این مطلب برمیره یک کتابی که زمان امیر مومنین در کتاب وجود داشته احتمالاً این که اهل کوفن قائل بودن که از اول نطفه استقنادشون به این کلام امیر مومنین بوده این روایت علی در و حقیقت این یک شرم طولانی داره که میگه جایش نیست ما خیلی مفصل توضیح دید که الان در وقتی پس سنابراین این روایت سر خیاس بودن شوشن شد این شارده دیات اعزار و مساویه بادیه کلگری یا <تصفيق> <تصفيق> خیاس مستلحه یا اصطلاحاً اخذ به عمومات و اطلاقات قائده من چران عرض کردم در قرن اول اسمش رعی بود در قرن دوم اسمش خیاس کل سنیا میرشن این یک ای اصطلاحیت که با دوشون قاعدم پس بنابراین این رواهت مبارکه اونطور که آیان در دنش که علم بست این علم منشه اولا علم نیه سالات مبدوز و علم باشه مورد حجت بگم اون سالات علم باشه منشه اینه منشه مبدت این بوده یک اونی که با عنوان سنت تیغمبر بوده اصل تنصیف دیه زنه چون در قرآن نبوده؟ دو در خود کوفه از امام باقیم نقوم میکردن دیگه تول مره اتران نسنن جو که کلشه و لذا خیال میکردن اگه کسی به تفصیل باشه جالی شکن امام هم میفرماییم درسته شما بخواییم راه درست اینه که تمام سننه پیغمبر درسته پیغمبر هم نیست اما یه سنت دیگه هم دارن اون این که تا سلس مساوی بعد سلس نیست این سنت رو شما نه دیودی ولیطا تکس قاضی حکم کردی اینجا جای حکم تکس قاعده نیست این راجع به این و اما راجبی اون استاد در کلامات نائینی فردا ان شاء الله یکم از بحث باشه این بحث یک بحثی در حقیقت باید ریشه های بحث بررسی بشه که ان شاء الله یه مقدارش امروز روشن شود در ریشه بحث ان شاء الله تعالی صلی الله علی محمد ما.